راژیو فیلم های بیپر نویسندگان رواد مزداوادی سعید نعمت الله کارگردان رواد مزداوادی. بازیگران فریبورز اراب نیا. اما از همون بچگی گیل ولی راد کوتاه بود خجالتی. هنگامی قاضیانی. نمیدونستی که قاتله کرده شمار برایم مهم نیست. دلچار نامش برایم آهو خیرات مان. خب در آخر مملکتتون خواهرات دو مادتون برود درید. پرویز سعید شهید. ماشallah ماشallah برکت بالبال میزد. حمید رضا هدایتی. بگم کنی بازمان راحته که زنده داده شامو بپسلم و کنم. موسیقی مرتضای شافی. تهیه کننده مرکز گسترش سینما مستند بعد هجروبی. راه روی کلانتری. زنی چادری به نام تاووس با پوتین سربازی گلالود از راهروی روی کلانتری میگذره اون گام های با سلاوت و آرامی برمیداره راه رو خیلی شلوغه. سرباز و مجرمی از کنار تاووس میگذرن ابتدا دوربین نیمی از چادر و پوتین تاووس رو به ما نشون میده و بعد از پشت سرشو میبینیم که از راهرو عبور میکنه اتاق کلانتری ساکورتی جوونی پشت میز نشسته و طاووس موبرق رو آرام و قنگم کنار دیوونه ایستاده قهرمان، من، من امشاحی پیدا نشده. یعنی ردی نداریم ازشون که پیدا کرده باشیم. شش ماه هفته دو روز ده حساب اینجایی. حالا پسرامو این خدا بیامرز یه ادعای کرده که لندروور بهشون زده و در رفته. ما هم داریم تحقیق می‌کنیم، پرسونجویی می‌کنیم. شما هم بسپر بسپر. بسپر به خدا. الله که درست میشه تووز یه نگاه به سرگرد میکنه و بعد با ناامیدی سرش رو پایین نمیزه صبح زود جادی خاکی رو میبینیم که دو طرفش بوته بلند بلان قرار داره و تو چاله هاش پر از آبه تووز و پسرش یه یه با دو چرخه از روش رد میشن دو دست انداز میافتن تووز غمگین و با روحی خسته به رو چشم اخده یهیو که هشت نه ساله به نظر میرسه رسه توپل و خوشکل و بانمکه. اون قفس خالی پرنده رو تو دستش گرفته. تاووز روسری سریه زخیم مشکش و مثل شمالی ها و دور گردنش گره زد و مانتوی گشاد بلند سبز پوشیده تاووز به سمت تک درختی میره و در فاصله چند متریش نگه می داره. و یهیو از دوچرخه پیاده شدن و دارن خوب به اطراف نگاه می کنن. چشمندوز اونا ابتدا درخت بزرگ پرشاخ و برگیه و بعد تو چشم کار میکنه سبزه اون انتها یه ردیف درختای سبز رو میبینیم و دسته ای از کلاغا که تو آسمون پرواز میکنن یحیی چشم میدوزه به گندمزار این با جهد دیگه ای رو نگاه میکنه نیمی از کوه و گندمزار یحیی به شونه مادر میزنه و جایی رو نشون میده مادر نگاه میکنه و لبخند میزنه توفوس و یهیا نشستن اون شاخه های خوشک بلال رو با دست کنار میزنن کمتر کمپا جلوندن پشتشون بوتوهای بلالی توفوس همونجا نشست و میختویلی آهنی بزرگی رو با تیشه روی زمین میخویده تیشه رو روی زمین میزده. طور باریک دراز دوسری رو که سرش حلقه است می اندازه داخل میختویله عقب عقب میره و دو طرف تو رو میگیره و محکم میکنه و می تکنه. حالا دو طرف تو رو روی زمین با فاصله گذاشتن یحییا نشست و یه طرف تو رو هی لوله میکنه و میکش و میره خب. مادر به طرف دیگه تورت که چوب باریکی رو وصل میکنه مادر چاله ای رو که کنده با تیشه گود میکنه تیشه رو زمین میذاره خاکا رو خالی میکنه و دوباره تیشه رو بر میدار و میکن یحیی از تو دو دوچرخه یکی سی سفید و زبت ستو رو بر و میره میسته از صدای هفو بیمون و با گام های بلند به سمت مادر میره مادر نشست و خاکای چاله رو خالی میکنه یحیی کیسه رو بهش میده مادر دستشو میتکونه که کیسه رو میگیره و کنار میزه یهیا تکه چوب باریکی رو باتیشه روی زمین میکوبه بندی از پای گنجیش به چوب وصله مادر ایستاده و دوم مار درازی رو تو دستش گرفته اونو آروم داخل چاله میذاره با دست نوازشش میکنه و میره در سیمی رو داخل دو ردیف تناب میندازه و اونو محکم میکنه سر گوله سیمو به دست یحیا میده بهش اشاره میکنه که عقب عقب بره یحیا همینطور عقب عقب میره نیست چیزی رو به زمین توجه شجرت میکنه گوله سیمو و کنارره میذاره تو کیف بشنی رو پیدا میکنه بر میده رو زنان میذاره تو چیش بلند میشه و دوباره با گله سیم عقب عقب میره یحیی و تاووس با همون تور باریک دراز یه شکل مسلسی بزرگ روی زمین درست کردن وسطش همون چالس و کنارش که اسیر تاووس و دو طرف شکل مسلسی نشستن و خاک روی دو طرف تور که حالا دیگه عین تناب شده میریزن و خوب روشون میپوشونن اونا تلماری درست کردن تاوز کنار بوتوهای بلند حال نشسته زبت سود قدیمی رو روی پاهاش گذاشته نبار کاستی رو از توی مشم و در میرو داخل جانباری که در نداره میزره دکمه زبت رو میزنه زبت روشن میشه دکمه استوب میزنه و نبار رو در اون طرفشو رو میزره روشنو روشن رو روی زمین میزره و روش با شاخ و بعد خوب میپوشونه دستی از گندشگاه لب لب یه این طرف و اون طرف می‌پراید. تا وس پوچای پالوالی خنواری زنده به طرف گندشگاه میاد. گندشگاه بله ی پوچای این طرف اون طرف می‌پراین و چیک چیک می‌کند. تا با شتاب به سمتشون می ره گندشگاه رو کیش می‌کنه. یه دیگه پاچه قرمز دستشه اونو به سمت که گنجیشکا میکنه گنجیشکا میترسن و میرند یهیا سود بلند سیاهی دستشه سود زنان از میون بیتهای بلان میبذره گنجیشکا میترسن و پرواز کنان از اونجا میرن مار از توی چاله میخزه و میخواد بیرون بیاد گنجیشک اسیر جیک, جیک میکنه مار میره داخل چاله تابوس لابلای بوته های بلند بنان قدم زنان رو را کیش میکنه دست گنجیش پرواز کنن از اونجا دور میشن یه یه دوان دوان میاد و میست و بعد سودزنان میره زبط روشن و صده گنجیشگاه را زبط میکنه مار دفعه چانه چنبره زده تا برس میاد و میست و به گنجیشگاه نگاه میکنه یه دسته بزرگ از گنجشکا میرن دابلای بوته های بلال رو روی شاخ و برگاشت میشینن ما داخل چاله است کنارش بجز گنجشک اسیر چند تا گنجشک دیگه هم داده. کنار بوته های بلال گنجشکا ورد ورژه میکنن تک گنجشکی روی بوته بلال نشسته پرواز میکنه هنشت گنجیشک ردیفی روی شاخه نشستن دسته یه طور و آهسته دور دستش میپیچو و یه محکم میکشه یه دست گنجیشک پرواز میکنن یه دسته دیگه توی تور اسیر میشن گنجیشکای اسیر نیمه جون و بیهان که دردناکی میکنه از یه وری افتادن بعضی دیگه سرشون رو از توی تور بیرون آوردن و جیک جیک میکنن تابوس کنار تور نشسته و لبه تور باز میکنه گنچشکی رو از تور جدا میکنه بیرون میاره و به یحیاد به کنارش نشسته میده یحیاد در رو باز میکنه و گنچشک رو میذاره اونتون های میکنن از توی تور بیرون بیان اما نمیتونن. تووز گنجشک دیگه ای رو به پسرش میده و پسر اونو داخل قفس میذاره و یه گنجشک دیگه اما یحیی به مادرش ایما اشاره میکنه که اونو داخل قفس نذاره زن سر گنجشکو نگاه میکنه و میگه آره جوجه داره پسر گنجشکو پرواز میده تووز و یحیی تو آلاچیقی که پایه های بلندی داره نشستن و دارن هندونه میخورن زنگ مبین تووزه تووز گوشیشو برمیداره نگاه میکنه جواب میده سلام باسم خواهد ما تورمون رو, رو تبتا خاکی پنگ کردیم کنار رای باشه خدا. تووز گوشیشو قصد میکنه و یه قاچ هندونه به پسرش میده یهیا از لابلای علف ساره بلند رد میشه نیش به گردن انداخته. صدایی میشنوه میترسه میسته علف ها رو کنار میزنه و دوباره میره کنار علف زار میشینه علف و خاک و کنار میزنه و جعبه بزرگ گرد سوحانی رو بر میداره. کوپاش میذاره درشو باز میکنه پوکی شنگ رو از تو در و میذاره داخلش میخواد در جعبه رو ببنده اما منصرف میشه داخل جعبه پر تابوز و خیر و پرتای دیگه است پوکه رو بر جبه رو کنار میذار و توی پوکه فوت میکنه گندم ساری رو میبینیم که گندماش زیر نور خورشید به رنگ طلایی میدرخشه و تنها یک گنجشک روی ای نشسته داخل آلاچیق زبتی سوت روشن مادر به در دراز کشیده دستش رو زیر سرش گذاشته و به نقطه ای خیره شده نوار تموم میشه صدای موتوری از دور میاد اون طرف بوته های بلال تو زمین خاکی جاده باریکی هست از اون بلندی موتوری به طرف این میاد داخل آلاچیخ تاوز بلند میشه کشه رو سریش و درگردنش گری میزنه موتوری میاد و میسته تک موتور قفصه دو طبقه چوبی بزرگی بسته شده تاوز از پله های نردبوم آلاچیخ پایین میاد دسته قفص و بر میده رو به طرف موتوری رو میره مرد موتوری که اسمش خاسمه اونجا ایستاده و منتظره قدودم سی سال شهر ما بیشتر نشون میده جولیدو نامرتبه ماهای فر ریز کم پشت می داره. کمی چاقه با قد متوسط قیفه خوبی نداره و خلوز و احمق به نظر میرسه سلام سلام, سلام. جمعی خدا آقا اسم شب جمعه خدا بیامورده آقا بلی ماشاءالله ماشاءالله. برکت بالوال میزنه شلوق بودم بود خبر سو شلوق. امروز شهر شنبه است ها چندتا است؟ پنجاتا بشو زیاده باشه باشه من بیشتر از نه به شوهر خدا بیا مرزت بده کارم. بعد از این همه مدت آه؟ چه بده کاری؟ بده کاری؟ بده کاری قمخشی. نون نمک من طلبای ولی رو جمع نمی کنم من طلبای ولی رو جمع نمی کن. باشه باشه هر دو می تا پوله رو جمع کنن تا روز موبایل مرد رو از روی زمین بر می تو بهش بده اما عکس روش توجهش رو جلب می‌کنه، دقت می‌کنه. زن جوانیه دارش کنم بیا بیا نگاه نگاه نون تو اینه نفر از فاصله دور اونا رو با دوربین شکاری زیر نظر داره از روم انگارش باید بشناسیش اسمش دالبانه نه اقابه نه قرقی هم اقابه هم قرقی بیشتر رو قله خرابه میشینه همه گشنگیش که بزنه بالا دنبال گنجشگاه تا مزرعهی بلال میاد میاد. اون آب خریدار داره علی روزنده 700 هزار ازارتان بابت هر کدومش پول میده به طورت خورد ازش. ن نقوشی بالندرو میگیره و نگاه میکنه. قاسم از اونجا دور میشه و از کنار لنداور میگذره. مرد جوانی پشت به ما روی کاپوت لنداور نشسته و دور شدن موتوری رو تماشا میکنه. وقتی خوب دور شد، از کنارش قمقمی بر و برمی‌داره، درش رو باز میکنه و آب میخوره. درش رو میبنده و کنارش میذاره. دوربین شکاری به گردنش آویزونه این همون مردیه که تاووس و قاسم و با دوربینش زیر نظر داشت دوربینشو به چشم میذاره؟ و تاووس نگاه میکنه که داره از میونه بوته بلند و نیزار بلند میگذاره مرد دوربینشو رو پایین میاره و میره تو فکر تاووس و پسرش پای پیاده دوچرخه از کنار تک درخت دشت میگزد قطار با سرعت از کنارش می رد میشه و پسرش به آبادی رسیدن و از کنار خونه ها اهالی در رفت آمد هستند چشت تا زن دم در خونه هاش نشستن. دیکی از یکی تا اونا رو میبینه دستش رو دهنش حائل میکنه و با زن دیگه پچ پچ میکنه تا و پسرش بیتوجه خست و گفته رد میشه به در خونهش میرسن دختری چودری اونجا روی زمین نشسته تا اونا رو میبینه بلند میشه و میگه سلام سلام چطوری چه عجب از این مرا خیر این وقت روز داشتم هم مرفتم. خونه دایی سمیه سریعا به تو بزنم خوب کردی خدیجه چطوره؟ گرفتار رو جواز جور کردن آقام رو وسائل برقی می خورده سفته گم سرخ کن؟ گونه که سرخ میکنه روغنه برو بقالی سم نمیفهمم فهمم چشه داره اذیت میکنه سر کن؟ سر داود یهیو تعلیمات تو اتاق نشنسته از تلویزیون کاتون تاموجری رو تماشا میکنه روز حیات خانه تابوس تووز کنار دیوار گلی که چند تا گلدون از اون آبیزونه او یه کوی که یه ردیف گلدون شامینی روشن نشسته داره برگوی زرد و ازش دودا بکنه دختر با فسیله یکمی روی تختی که فرش و پشتی داره نشسته با هم در حال گفتگو هستن حالا خان چه رنگه سخ میگیره ناسلامتی تو اخ کرده داوودی. از دختر اخت کرده تو خونه خوشش نمیاد دوست نداره داماد عقدی جل در امسای بره و بیاد. فرقشیه منم موندم. به داوودم بر میخوره دیگه. ترستم کم کم حرمتشون بره تو هم. خونه دایم داوود میبینم. گفته اموز دیرتر میرسته. تووز بلند میشه میره کنار دختر میشینه. رسی احیالش شتاره. هیچ بهتر شده؟ شکر خدا بدتر نشده. این تو این چند وقته؟ یک کلمه حرفم نزده؟ نمیدونم نمیدونم ولی بعض وقتا فهم کنم شبا تو خواب حرف میزنه یه مثلا فهم کنم میشنم به من چی میگم و ولی برو خودش نمیده بعید نیست باهوشت که پدر سوخته هر دو غمگین میشن و سرشون رو پایین میندازن دختر میگه خدا بیا مرزمو ولی رو چند وقتی که به سالش مونده تووز سرش رو بر می و میره تو فکر تووز در صندوق قدیمی رو باز کرده دونه دونه ترمه ها رو بر میداره و طرف دیگه ای صندوق میذاره و اون زیر رو پیدا میکنه بر میداره بهش خروت میکنه و با دست پاکش میکنه در شب خونه جاری تابوس داخل اتاق تابوس و یهیا به پشتی تکیه دادن کنارشون دوتا کادوه جاری تابوس چایی براشون و میاره چقدر خوشحالم کردی خوب موقعیم اومدیم ناصر هنوز نیومده محسومم رفته خونه داداشم این چیه؟ گفتم کادمو جلو جلو بدم سرخون که براش نخردیم دست درد نکنه تو سیاهی مرگ آقا ولی سیاهی مرگ به کنار از حیای تو و ناصر خانم خبر دارم تا سال ولی صبر نکنین راه بندازی عروسی این بچه رو جاری تووز میمونه که چی بگه عروسی اگه یه سال دیگه وقت میفتاده ای نداشت ترسم از ناصره آسه به داوود چپ نگاه میکنه میترسم دودش تو چش بچه هم بره عروسی که را بیفته تموم این جاری و تاووس تو اتاق نشستن جاری داره صورت تاوز رو بعد میندازه تو میخوای چیکار کنی؟ چی رو چی کنم؟ نمیخوای برگردی رود بار؟ بعد از زلزله؟ بعد مادرم؟ خب به نخری مملکتتونه خواهرات دومادتون برادرت منجه رازیم دستم تو با خودمه ولی اونجا با چشم به جیب این اوم باشه عقد شوهر من نشد جاری تو بی قرار میشون میگه تو, تو خوشگلی جوونی بعد از مرگ آقا ولی خدا بیامرز مرس شکم تو این بچه اونم با اون وزش این کوچه های بند انگوشتی. خب ناصرم مرد غیرت داره دیگه حرف مردم دارش میکنه زن سایه بالا سرش نداشته باشه مردم ولش نمیکنن خب ناصرم غیرت داره دیگه تاووز تعجب میکنه جاری گریه کنان خودشون میندازه تو بقل تاووز وس باقلش میکنه با سرش رو نوازش میکنه کدوم باید این فکر رو انداخته تو سر زن میدرسم سایه سر منه چون برادر ولیه اموی یحیاس همین حالا چرا با این اجاله خوب شب میموندین جاری بارده اتاق میشه تووس و بزرش میخوام برن جوری از حرفی که زده ناراحته و دستش رو جلوی دهنش ها کرده آخه خدا رو خوش نمیاد بچه داری گوش نمیبری خونه گوشنش نیست از رونش رو خیلی دیر دیدم ببوش مادر اموی یحیان ناصر در حیاتو باز میکنه و میاد تو سلام سلام زنده داشت سلام مرسا خوش اومدی. همون جان چطوری؟ خوبی؟ ممنون دیگه داشتیم راه زحمت میکرد کجا؟ مگه بیشه میشه هم؟ تابوس جون برای عروسی محسوم میخواد سیاه هستن داره ره حالا بهت میگه خدافز میرسونم از زنده داشت دیگه یه کوچه و چهار تا خونه اون برتر همرا نمیخواد نسخم میگه عروسی رو را بندازی میگه لازم نکرد تصاله اون خدا بیمور کنیم. بسه محسوم صبح کم خریده تو چرا نمیذاری برم؟ چی میگی؟ گفت که خودش تنها میره این تنگ شب؟ ما شلو یه مرده آقا بالا سر نمیخواد دارم میگم تا دم خونش برستونم چه ربطی به با آقا بالا سر داره؟ از چی حرف میزنی؟ تو خوزدن داداشمه؟ من بیروسری قیافش رو نمیشنسم تو چی فکر میکنی؟ فکر حرف پوله مردمه قصو وقتیش مال منه سیاه از بزن همون شب خونه یه تاووز یهیه خابیده کنارش دراز کشیده دست راستشو زیر سرش گذاشته به عکس شوهرش که رو تاخچه از خیلی شده و عمیقا به فکر فرو رفته صبح زود دشت سرسبز توفو صبح از کنار تک درختی که شخ و برگاش مثل چتر په شده با دو چرخه تووز به طرف بوته های بلال میره یه دست گنجیشک لابلای بوته ها هستن تووز قرمزی رو به طرف بالا پرت میکنه و میگیره دست راستش رو محکم به پاش میزنه و گنجیشکا رو کیش میکنه گنجیشکا میرن ولی بر میگردن مار تو چاله است. گنجیشک اسیر کنارشه تووز برگای بلال رو آهسته کنار میزنه و خون به ماری نگاه میکنه کنه وای آنمه گنجیش گنجاست تاووز سر سیم طله رو با دست چپش گرفته و همیتور سیم رو به دور دست راستش می و نگران و آماده به گنجیشکا نگاه میکنه کنه یحیام کنارش اصداده ناگهان صدای تیری میاد و همه گنجیشکا پرواز میکنن و میرن طاووس با شتاب و خشمناک لابلای بوته‌های بلند بلال گام برمی‌داره. از بوته‌ها میاد بیرون. هراسان و گره گرفته به این سو اون نگاه میکنه دور خودش میچرخه. هیچ خبری نیست. یهو به یه جای خیره میشه. همون مردی که دوربین شکاری داشت، با تفنگ شکاری از لابلای بوته‌های بلال به طرف تاووس میاد. یا هراسان به مادر نزدیک میشه و کنارش میایسته. مرد که آفداب و جذاب به نظر میرسه با علاقه به تاوز و پسرش نگاه میکنه و پسخند میزنه پسر با تحجاب به مادر نگاه میکنه مرد شکارشو نشون میده یهیان میخواد به طرفش بره که مادر به تندی دستشو میگیره و مانه میشه مرد شکارشو پایین میاره و روی زمین میندازه شکار لاشه یه دو دوتا خرگوشه تاوز اخم کرده مرد توفنگشو روشونش میزون میکنه تو... تو اسمت... عردشیر رفیق قدیمی ولی خدا رحمتش کنیم سیدمو پروندی سید اگه ماده سیاده شکلچی یکش نباید دو بشه سید این خواب میپره یکمو نگفته تیر در کردی صد تا گنجشم پرید شکارچی در هم شکار نمیکنه. <تصفيق> شکارچی تک خال میزنه. تک خالشو با هیچ چی عوض نمیکنه شکارچی تک خال سبوره نمی بینه شکارو یه دیگه رو من تک خال باش یکی میشه؟ گستاخ نگاهش میکنه و دریده بی هیا مرد به تووز نزدیک میشه اتوبوس عقب عقب میره و دست پسرش رو میگیره و میرن مرد توفنگش رو از روشونش پایین میاره عخم کرده خیره به رفتن اونا میره تو فکر روز سلمونی مردونه آره کرد که مرد میان سالیه داره ناصر رو هسلامی کنه ناصر مقبوم تو فکره آره به طرف میزش میره نصفه تیغ تیغو داخل ریشتراش میذاره و برمیگرده طرف ناصر سیر گلوشو اسلامی کنه مفت کنه ولی چی جون تو میسپری دست دوتا لاستیک و باد شما چجوری خوابش میبره؟ میگن جیب بوده ها؟ آسان میگه لندو چه شانسی و قاسم گفتن ازاداری ولی نه یک کپ ریش الانشم که درم برمیام در از ازادار بابا بادر دو دومادت بند خدا داره بال بال میزنه چی بگم بابا؟ دختر اخ کرده مثل زن بیوه میمینه تو چشه آره. هرچه زودتر بره خونه شوهر خیال خودتم راحت تره مرد که بالا سر زن نباشه حرف و حدیث سیاده یو چشمش میفته به تووز و پسرش که پای پیاده با دوچرخه از کنار مغازه رد میشن آره کرد که تمام حواسش اونجاست یهو گلوی ناصر رو میباره ناصر که متوجه قضیه شده غیرتی میشه و نگاه تند و خشمکی بهش میکنه آره شرمنده سرش پایین پایان ناصر انگشت اشاره رو روی بریدگی گلوش میذاره و امیقا میره تو فکر شب قرص کامل ماه تو آسمون دیده میشه سایه های عبر از روی ماه میگذرن شرشار بارون ناصر و تو خود فرو رفته با شونه های آویزون از پیچه کوچه میاد به طرف مغازه قاسم میره در مغازه رو باز میکنه قاسم پشت به ناصر با کفترش مشغوله که یهو متوجه ناصر میشه ناصر بدجوری نگاش میکنه تو نگاهش خشم و هرس و نفرت موج میزنه قاسم از ترسش آب دهنشو به سختی قورت میده شب حیات خونه ی توفوز از روی رو به طرف حیات میاد. قفصه پرنده رو از روی دوچرخه چرخه بر میداره. تو خورچینو رو میگرده. چند تا وسیله از توش بر و میذاره زمین. یحیو از پشت پنجایی اتاق کنج کاف نگاشت میکنه. توفوز انگار چیزی رو که میخواد پیدا نکرده. یهو بر میگرد و متوجه اومدن پسرش میشه. شب. از نمای نزدیک فانوس قدیمی بارون خورده خاموشی رو که از دیوار آویزونه میبینیم تاوز به طرفش میاد و اونو بر شب جده تاوز با دو چرخه و فانوس روشن که ازش آویزونه از کنار جده به طرف ما جاده جده و تابلو سرعت شهست کیلومتر رو میبینیم مینیبوسی میسته می شب خونی قاسم قاسم تو اتاقش چارزانو به پشتی تکیه داده. ضبط سوت بزرگی رو روی پاهاش گذاشته. آهنگ هندی گوش میده. روی دیوار عکس صورت چند هنرمندیشه زن هندی رو چسبونده. تو عالم خودش سر میکنه شاید به تاوس فکر میکنه صبح زود طاووس و پسرش با دوچرخه به طرف مزرعه میرن. صبح زود حیات خونه قاسم از نمای بالا قاسم میبینیم که بیحال از در میاد بیرون و به طرف حیات خلوت میره کنار دیوار یه سینک زرفشویه هست و روی دیوار یه آینه شکسته قاسم با بلاحت خودش رو تو آینه نگاه میکنه فکری به نظرش رسیده نشخند میزنه صبح زود جده خاکی قاسم شنگول اسلا کرده کت و پوشیده و با موتورش داره میره به سمت مزرعه روی گنه سمت چپش یه چسب کوچیک شده که احتمالا موقع اسلا صورتشو بریده به مزرعه نزدیک میشه در فاصله 100 مترش تو آلاچیق یحییای ایستاده قاسم از موتور پیاده میشه کت و شلوارشو به طرف آلاچیق میره انگار خیلی به خودش مینازه یهیو از پله های نردبومه پایین میاد قاسمم از راه باریکی که دو طرفش بوتوهای بلاله به طرف پسر میره به هم میرسن قاسم میگه یهیو سمت راستو نشون میده قاسم روی بلندی ایستدو سمت راستو نگاه میکنه یهیو روی موتور قاسم نشست و کلی کیف میکنه صورت قاسم رو میبینیم که خوب اطراف نگاه میکنه تو صدای بوغ موتورشو میشنبه اخت میکنه و بر میگرد و به موتورش نگاه میکنه و به طرفش میره تنها گذاشتت خوجه رفته تو از من خوشت میام قاسم چسب رو میکنه پسر لبخند میزنه یه پایین بیا, پای. بیا. قاسم سوار موتورش میشه من میرم دنبال مادرت مادرت موتور خاموش میشه دوباره روشن میکنه دهیا اخم کرده و به دور شدنش نگاه کنه صبح جده خاکی لندوبری از سراشیبی جاده به طرف ما میاد تاوز با دوچرخش کنار جاده ایستاده و منتظره راننده لندوبر همون مردیه که دوربین شکاری داشت در فاصله نه چندان دور روبروی تاووس میایسته خب بهش نگاه میکنه تاووس جدی و موقر نگاش میکنه و سرشو پایین میندازه مرد لبخند میزنه و از ماشین پیاده میشه درو میبنده و به طرفش میره در فاصله چند قدمیش میسته به طرف لندوورش میره نمیتونه چشم از تاوس برداره نوار در حال رفتن برمیگرده و نگاش میکنه و میره در لندوور باز میکنه نوار كاستی رو برمیداره و در ماشینو می‌بنده. به طرف طاووس میره. با دست راست نوارو هی میکوبه روی کف دست چپش. به طاووس میرسه. طاووس دستشو دراز میکنه. مرد نوارو نمیده و میگه: "کته ولیه؟" مرد نوارو میذاره تو جیبش. ناراحت میشه و سرش رو پای میندازه بچه که بودیم قد من از ولی با بود رود درشتر بودم سردسته بودم همیشه اما از همون بچگی ولی قط کوتاه بود و خجلتی پپه ساده ولی من توی یارکشی همیشه انتخابش میکردم اول همه. بعد ها بزرگتر شدن تو سروازی من بلند پلند دراشتیکار صفحه اول رژه میرفتم ولی با ورکوت گله بشدش صفحه آخر از خدمت که برگشتیم گفت میخوام زن بگیرم گفت قریب است گفت اسمش تاووزه وقتی اومدید دیدم نه جدی جدی تحفظه خفت کردم در دفیر برنده که بود شد بازنده من گوشتم سوز شده بود روی ماشه واسه شکار زن شوهردار سمت هر زنی رفتم تو سرم بودی نقل همی گفت شوهر داره پاپ کشیدم فرار کردم دور شدم از ولی تا از جلو چشمم دور شی از ترم پاکشی اما نشد نشد آقابت ولی اموت کرد من سر وقتم که چی چی شده چرا رم میکنم رفاقتمون چی بهش میگفتم عاشق زنت شدم تو خاکی مینیبوسی از کنار آبادی میگذره پیرمرد فوزولی تووز و مرد رو با هم بیبینه. یه یکمی سرش رو از پنجره بیرون میاره خوب دقت میکنه از اون طرف قاسمه به اونا نزدیک میشه و میسته تووز نوارو تو جیبش میذار و به دوچرخش میره مرد دور شدنشو رو نگاه میکنه قاسم و مرد هر دو برمیگردن میگردن و مینیبوسی رو که در فاصله نه چندان دور رد میشه نگاه میکنن روی شاخ و برگ درخت خشکی که پشتش بوته های سبز بلاله پر از گنجشگه تاوز گوشه آلاچیخ کس کرده دست راستش رو زیر سرش گذاشته غمگین و فکر گهیا از پلدههای های نردگوم آلاچیق بالا میاد مادر رو که اونطوری میبینه ناراحت میشه پروی خودش نمیاره به مادر نزدیک میشه جایی رو اشاره میکنه که مادر ببینه اونجا یه دست گنجیش روی شاخ و برگ بوتانی هستن که یه پرواز میکنن و میرن پشت سرشون پرنگه سیوه بزرگی از اونجا رد میشه روز مقاضه مکانیکی ناصر ناصر قطعی رو فوت میکنه و داخل دستگاه میلن میذاره همون پیرمرد فضولی که تو مینیبوس بود آهسته از کنار در شیشه مغازه در حال تخم خوردن دوستکی تو رو نگاه میکنه و میاد داخل خدا میدونه چی میخواد به ناصر بگه سلاموست ناصر تک سیاهی تو آسمون پرواز میکنه یه دست گنجیش از لابلهای مزرع بلان پرواز میکنن و میرن توبوس از لابلهای بوتوهای بلان راحت میشه دست میزنه و گنجیزکار کار پیش میکنه صدایی میشنوه میسته شخ و برگای بوتوهای بلان کنار میزنه و جایی رو نگاه میکنه در لندوگه را باز میکنه شلنگ و بنزینو بنزین را از سندانی عقب ماشین سلام سلام در ماشین میبنده بنزین تموم کرده. اینا موصفشون زیاده. بدر شیر. زخ میکنه و بی‌توجه گالون روی ماشین میذاره و شلنگو داخل باک بنزین میکنه. کلانتری تو هم خاص. من چه میدونم؟ من دیدم یه به بهمون زد. منم گفتم واسه هم شاش. شاش. شرک نه. یه ساعت تو رو بردن و ولد کردن سال ولی سال ولی هم نزدیکه خودو بیان میگم تو اصلا تکون نخوردی همون جوری موندی خوشتی کارشونه چرا زن نمیگیری یالغوز میا یالغوز میری دستم که به دهنت میرسه قیافت خوبه خوب بیخت من نیستی هر جا میرم زن بگیرم میگن نه نه نمیگم واسه چی ولی من که خر نیستم لب تر کنی هر دختری بهت میگه بله بله آدم از تنهایی کپک میزنه زن که نباشه خونه جهنمه دست ولی عقب بیرونه خنه زن و بچهش به رو که اعتقاد داری اردشی داخل لندو برش میشه پسرمون ناصر پسرمون ناصر راضیه که من راضیه که من با تاووس من تاوس بگیرم وقتی دور تاووس میچرخی خب منم جای تاووس باشم به تو میگم آره اردشی آره. زن باز تو قط نیست گس من هست بگذرد تابسی اردشیر بیتوجه گازمداو می میره قاسم اخم کرده و خشمناک میگه هسن از کجا معلوم اون که به ما زد تو نبودی اردشیر جلوتر میایسته قاسم خودشو جمع و جور میکنه سرشو پایین میندازه و از ترس و خجالت یه نگاه به زمین یه نگو به اردشیر میندازه که داره به طرفش میاد ارتشید میاد و گوشش رو میگیره و میگه تاووس لقمه یه دهنه نیست نیست گوشش رو ول میکنه و اخم کرده میره قاسم زیر لب ناسزا میگه تاووس و پسرش آهسته به طرف تل میرن تاووس سر سیم طله رو از روی زمین برمیداره آروم دور دستش میپیچه و محکم میکشه به طرف تله میرن یه دونه پرنده توی تور اسیره پرنده تقلیم میکنه که از توی تور بیاد بیرون اما نمیتونه تونه. و پسرش میشینن و نگاش میکنن یه هیومه خواد بهش دست بزنه مادر سریم ماله میشه بالابانه همون که قاسم گفت توفوز به طرف پرنده خس رو خوب نگاهش میکنی دستو میزنه بالابان شکل بچه عقابه زبانشو بیرون آورده و لح میزنه صبح زود مزرعه بلال خوشید تازه تولو کرده و انبار تلایی و نارنجیشو روی مزرعه بلال و آلاچیق پاشیده تووز و پسرش با دو از روی ریل قطار میگذرن تووز تو آشپسخونه با عجله و دست باچه از توی قوطی قند یه مقدار قند توی قندون میرزه و سینی چای رو بر می و میاد بیرون چراغ آشپسخونه رو خاموش میکنه تووز به طرف اتاق میره جاریش که تکیده و مقموم و لاغره به پشتی تکیه داده و منتظره تووز میاده با هرس سینی چای رو جلوش میذاره و می جوری مت مبهوت بهش نگاه میکنه. طاووس بغض کرده. حرفشو تو دهنش مزه مزه میکنه و میگه بناصر خان سلام برسونید بگین. بگین از شما همون اسمتون که اموی یحیای ما رو بس. بگین طاووس گفت اگه بنا به سربار بودن من سربار خودم جوری نوبنداش رو پایین میدازه. که پیرت رد جاری از در خونه میاد بیرون هم به دنبالش قاسمو میبینن که مقابل در دست روی دست گذاشته و مؤدبانه ایستاده قاسم تو اونارو میبینه سرشو پایین میندازه تاووس با هرس در رو بروش میکوبه قاسم مایوس سرشو پایین میندازه تاووس پشت در اخم کرده و تو فکره قاسم یه دستاشو دستوشو اصلا باز میکنه و شونه هاشو میندازه و به جاری میگه؟ دلش که شهر جاری میره قاسم به نگاه میکنه شب توفوز چدورش و دور خودش جمع میکنه و متحیر به در باز قفس بزرگ چوبی بالابان نگاه میکنه و میگه؟ بالابان یحیی قسر تعیید میکنه مادر ناراحت سرشو پایین میندازه شب اردشیر تنها مقابل آتیش نشسته و به دیوار تکیه داده با چاغو سیپوس میکنه و میخوره و تو فکره تووس تنها تو اتاق نشسته زانوی قم به بغل گرفته و تو فکره شب خونه قاسم قاسم معیوس و هرسی چهارزانو تو اتاقش نشسته و به نقطه خیره شده عکس صورت زنوی هندی نیمه پاره رو دیواره اون از خشم به خودش می و نفس نفس میزنه. صبح زود اردشیر با لند و برش از پیچ کوچه آبادی به طرف مغازه ناصر میاد ماشینو پارک میکنه و به طرف مغازه میره ناصر اونجا نشسته و داره سیگار میکشه و فکر میکنه اردشیر میاد مکس میکنه و نگاش میکنه و داخل میشه ناصر به پشت بلند میشه و میگه و آورد شیر رفیقه با معرفت ولی خدا بیامورس تسلیت بعد از چند سال قیبت و سه تسلیت تشریف آورده آوردن <تصدق> <قردم> آوردم وقتشتی ایسی خواهد نگه نداری چه چی؟ واسه سنگ شما زحمتو در رسرش کم داره. به که این چند سال می‌برdish اونجا دیگه نیست. تعطیله. تمام شد. واسه اش داری؟ خودت. روز حیات خونه ی تاووز روی تخت کنار قفسش نشسته و بنده کتونیش میبنده مدر با تولنبه لاستیک دو رو باز میکنه تاووس در رو باز میکنه ناصر بشته دره اون مقموم و شربنده ایسلده و سرش رو پایین انداخته نگاهی به تاووس میکنه ناصر و تاووز روبروی هم تو اتاق نشستن ناصر سیگارش روشن میکنه تاوز جدی و سرد نگاشت میکنه ناصر در حالی که از شدت ناراحتی دستا و ازولات صورتش میلرزه و سرش پایینه پاکی به سیگارش میزنه و میگه از اجباری که برگشت هنوز مویترش دشتر نهمده بود که نشست برقنم گفت با رضا غری، غریب ماجر مهاجر زیر فروش به سرخالت باش غر بودم بعدش نمید تو کار حروم محلال کنم گفتم غرم گفتادش دخت خاله رز مهاجره اسمش تابوسه میخوام بگیرمش گفتم نکنه حوثه ولی جوون نو سر هوا هوا بیترسیدم زنش بدن صفت و سخ وایستاد که میخوامش سیاه مادریتو که هستنه دروردی ولی شد احل زندگی مرد خونه و کار جمج کردی من چه مورد طبق دارم جمج کنی بروشو. تو بازار که رد مردم بد نگام میکنن انگوش نمای نکن زنده داشت انگوش نمای مردم هم نکن داشت نمیخوام تنه بلی گور این دلگیری شما این انگوش نما از چیه؟ از کدوم خاک تو سری یک از من سر زده؟ چیکار که فلوای قراصی با قاسم شدن؟ بهم می‌گین واسه من راحته که زن داداشم رو به سرمم تعارف کنم؟ سایه برکتی باشم خفته یارو پاهای خدا بالا سر بچم هر پسر باری نیست حرف مردمه که داغم میکنه حرف کج نگاه کج پچ پچ من میگم سایه سر خدا هست اگه خدا هست با چرا با بندش دو جاده قلبت میکنی تو بردشی کار چیه کی گفته اون چه گفته قاسمه اون چه دیده یه بینیم او یا یا حراسان میاد تو از زده به اموش نگاه میکنه کنار مادرش پناه میگیره اردشیر بین تک سنگ های بزرگ کمین گرفته و با شکاریش جایی رو هدف میگیره قبل از اینکه بزنه صدایی میشنوه توفنگش پایی می رو پایین میره و به طرف صدا میره تاووز با چوب بزرگی محکم به شیشه جلویی لندوبره اردشیر میزن شیشه ترک میخوره میشکنه. اردشیر تو این صحنه رو میبینه خونسرد قدم زنان نیشخند میزن و به تاووس نزدیک میشه تاووس که متوجه اومدنش شده با خشم نگاش میکنه بعد با چوب یه ضربه محکم به کاپوت ماشین میزنه و چوب و مثل عصا تو دستش میگیره و قرص و محکم اونجا میسته اردشیر طرف دیگه ماشین میست و یه نگاهی به درایم ماشین میندازه. طاووس چند قدم به طرفش میاد. اردشیر میشه و میگه: سیدم پروندی. سید اگه مال سیاده شکارچی یکش نباد دو بشه. وگرنه سیدش میپره. با همین شیشه خوردش میری تو محل. جلوی همه آدما. همه مینی وامیسی میگی من واسه تاووز قریبم همه قریبم آشنای تاووز یحیاس تا تهش پتفایی سدم تاووز به هیچ کلامی مذاری باره روز پیچ جاده خاکی یه طرف جاده پر از درخته طرف دیگش زمین بایر اردشیر با لندوبرش با سرعت از پیچ رد میشه و کلی خاک به پا میکنه در حال رانندگی با چوب شیشه ترک خورده و شکسته جلوی ماشین رو و به کناری میندازه. روز اردشیر لندوبرش رو کنار خیابون آبادی پار کرده اون طرف پیاده رو چند مرد پیر و جوان به دیوار تکیه دادن رو به اهالی میگه صاحب این ماشین با چوب میفته به جون ماشینشون ماشین رو درب و داغون میکنه یه غصاب یه نونبا از توی مغازه میان به تماشه اهالی هاج و واج نگاش میکنن چوب به کنار میندازه و میگه صاحب لگن باید سبی آب روی تاوز شده بود اگه یه نفر دیگه یک کدوم از شما یا صاحب این ماشین یا هر کسی سیخونک با آب روی بزنه به من طرفه روز قاسمو میبینیم که با موتورش داره میره ترک موتور همون قفسه چوبی پرنده دو طبقه است روز از نمای داخل دستگیری در مغازه پرنده فروش قاسم رو میبینیم که قفل و زنجیر زده اردشیر میاد خیلی مغازه پارک میکنه و تو می مغازه بسته است میره اردشیر با لند و ورش از جاده خاکی که یه طرفش یه خونه بزرگ و طرف دیگش انباری از زایات زبال است رد میشه در خونه قاسم میزده از ماشین پیاده میشه. داخل حیات میشه. کلی خرت و پرت اونجاست. فرغونی که یهوری افتاده و توش پر از لوله های پلاستیکی کهنه است. قفسه‌های آهنی زنگ زده درای چوبی و میز کنه. منبع آب بزرگ و ته حیات یا انباریه. یه نگاهی به اطراف میندازه و میره. آسم با از جده خاکی که دو طرفش درختای بلندی داره میکسره روز تعدادی کلاخ تو آسمون دایر وار پرواز میکنن و قارقار شومی سربیدن روز کنار دشت اردشیر کنار لندوورش رو به آینه بقل ماشین داره صورتش رو اسلامی میکنه یه قاسم و میبینه که با موتورش از سر و شیبی جده خاکی به طرفش میاد سری با هولهای که روی شونش انداخته صورتش رو پاک میکنه مدرش نفته بلند میشه خودش رو جمع و جور میکنه و معدب میسته و سرش رو پایین میندازه ارتشیر خشمناک به طرفش میده سلام خلال کردم خلال من به خدا به چیزی نگفتم به جون مادرم به خو... عرشی. عرشی. من کجا بری ارتشی ما من دور زبونتو از حلقومت میکشم بیرون تا بفهمی زبون کهی باید به چرخه کهی بند بیاد ارتشی جون مادره من کجا بری ارتشی جون مادره اون موقعی که جله ناصر زبونت باز شده بود بعد فکرشو میکردی تا الان به غلط کردن نیفتی چی گفتی به ناصر؟ چی هیچی حرفایی که بهت مربودیس از دهنت در میاد فکری همی خرم فکری حالا دیگه ناصر خان اجازه داده تاووس بالا تو پس تاووس چی؟ فیلم هنیه؟ داود به خود خیال کرد یا فردا میاد و همیسته تو آشباز خونه برد قرمیل آواز میخونه قرمه سبزی درست میکنه آره؟ چی گفتی به ناصر؟ من من من, من, من، من، من گفت من، من یک چی نگفتم صد دفعه بهت گفتم تاوست، لکمه یا نیست، نیست پشت سر یه زن بیوه ورور میکنی فکر آبروش هستی من، من, من نمیخواد ببرم به خدا به اولفند به جون مادرم دو د ودگی. خفشو <تصفح> دوستش دارم دوستش دارم. الان را میافتیم میریم پیش تابوس. جوله همه وای میسیم میگی من این سش دارم ولی دروغ گفتم با هردشوی خلوت کرده میگی من عاشق تابوسم ولی زر زدم لندوور زدش و هردشو کشته فهمیدی؟ جوله همه میگی من عاشق هم. ولی دروغ گفتم قبل مرگ شوهرش توی قمه خرابه با هم نروش شده بود صحنه قتل ولی شب شوشور بارو ارتشیر تولندورش پشت رول نشسته و بی‌حال به صندلی تکیه داده و به نقطه خیره شده بخواستم کنارش بخواستم اون پایین ولی قاسم من من من من با حال گیره بالا بالا ازش بگیرن معولش شدم خودش افتاد بود خدا به حال نشدند من زانو رو پس شدنم قاسم ولی روح میده ولی بیچون پلیس امنیتی نرفته زلی زلی حالا فهمیدم من فیرمانی اسفه دیده بودم حالا روشن شد من من من من, من،, من،, من نمیخواستم بمیره من من من حتی برشاشم گذاشته بشیر بطور به برمش بیمارستان. تو رات همو دیوانه شده بود او خودش دزور نمیداشت من من مخواستن رویدم ویلندوگر، حالا که نمک خوردم، کجا؟ میرم چلان تلی. گرفتار. یا نه؟ آدیچیچو نشون دادن. به همه میگی، تاوز، ناصر، همه. برای پارانو ریچلاد نمیاد بده اون میکنه مگه من اداق کنم ولی شکاری اردشی رو از فی ماشین بیا میزنه چیکار که تو فیلم میبینی کی هست ما بازیه من نمیدونم به عزا زبواس میزنه میگم بدهش به من قاسم میکن. شلیک میکنه خودش عقب عقب میره و به ماشین تکیه داده به زور خودشو سر خودشو داشته سمت چپ شکمشو با دست گرفته دستشو بر میداره پر از خونه روز قطار مخزندار به سرعت رد میشه شم حیات خونه یه لامپ حیات روشنه تاووس روی تخت توی پشه نشسته از دو دراز کرده پسرش یحیی که میدونیم لاله و قدرت تکلاش رو از دست داده سرش رو روی پاهای مادر گذاشته مادر همینطور که باهاش حرف میزنه سرش رو نوازش میکنه قبل از اینکه به دنیا بیای قربود اسمت بذری محسن اما همین که به دنیا اومدی بابات جر زنی کرد و گفت همیشه دلم میخواست شوهرم قدش بلند باشه یه روز از دهنم پرده رو بابات گفتم کاش لاغر قطع یحی بلنش اخماش رفت و هم نگام کرد ولی هیچی نگفت از فرداش کفش پاشندار خوشی نمیدونستی که قد و هیکر شوهر برایم مهم نیست دل و جنمش مهمه حالا پسر نشسته اما خوابه خدا رو شکر خدا را شکر که رو دارم مرد من یه دستشو روی مادر گذاشته پاهاشو دراز کرده و مادر سرشو روی پاش گذاشته مادرم یه دستشو روی دست پسرش گذاشته به نقطه خیره شده و عمیقا به فکر فرو رفته شب کنار ریل قطار اردشیر چراغ لندوبرو رو به ریل روشن کرده لنگان لنگان به طرف ریل قطار میره دست و پای قاسم و بسته و روی ریل خوابونده عرشی چیکار میکنی؟ چرا دیمونه شدی؟ اگه الان قطار میاد چی؟ عرشی جونم مادره آخه این کاره واسه چیه؟ ببن فکر تو <تصف> تو نیم ساعت دیگه هیچ قطاری اینجا رد نمیشه نمون بعد از اینکه قطار نسبت کنه من حرف دارم ارشید تو رو گرآن تو خودم باید بری بیمارستان حالت خوب نیست رنگت پریدا داری میمیری میدونی واسه چی؟ بسید و نفرت باید دارم که کل از زندگی تو مثل فیلم میمونه نه سرش درسته نه دهش. نه وسطش. باید واسه زار زد اما پر از رقص و آوازه اردشی لجبازی نکن یا دست من واس کن ببرمت بیمارستان میمیری یا مثل ولی که وردش رسوندی بیمارستان اردشی رسوش میره بیوش چدی؟ یا قرار کمک کمک برد بی خود داده بیداد نگم زنده خدا رو باشو باشو قبوله بریم کلانتری هرچی تو بگی باشو قبوله داره یواش باشه باش دستگیدت میشه اما اما هنوز زوده مرگ چشد که زل بزنه شوخی کردم با زندگی ایدون ازیادت میره توابل تموشوش از از رو بلندی کیف داره لوس بیا قطار یا مال یا قطار هر لحظه نزدیکتر میشه نور چراغ قطار روی صورت برجوی اردشیر میتابه ای خدا آدشیر آدشیر بچو کف در در حالی که لبخندی به لب داره محف میکنه پردیه کاملا سفیدی روی تصویر میاد هرشی پاچون هرشی درم خودم درم خودم یه تکون بکن یه تکون بکن هرشی درم هرشی هرشی درم یه از تصویر سفید به تصویر دیوار سنگی نیمه روشن زیارتگاهی میرسیم اونجا تاووز پشت به ما با چادر سفید ایستاده. روبروش پر از سخره های نوکتیزه که گله گله روشون شم روشنه شاید صدها ها شم تا شم خاموشی رو بر و با نور شمی اونو روشن شم میکنه و اونجا میذاره گوشه چادرش رو بغل کرد و نفسی راحتی میکشه تاوس متبسل از در زیارتگاه بیرون میاد روی در آهنی سبز پر از قفل و پارچه های گره خورده است یحیا کنار پیرزن چادری که دختر بچه ای رو بغل کرده ایستاده و از توی قفس گنجیش در میر و به دست پیرزن میده پیرزن اونو دور سر دختر بچه میگردونه و بوس میکنه و پروازش میده تاوس و یهیا و پیرزن خوشحال به پروازش نگاه میکنن روز مزار ولی تووس و یحیی کرار مزار نشستن پشت تصویر در فاصلهی نچندان دور همون زیارتگاه هم میبینیم تووس از توی موشم مشت مشت گندم گندان برمیده رو بلی قبل شوهرش مرزه و یهیا نباده پخش می‌کنه. میکنه مزرعه بلال صبح زود آسمون گرفته و دل پاری داره باد شدیدی میوزه باد انگار شلاق میزنه زوزه باد لاولای گندمزار بوته های بلال نیزار و علف بلند میپیچه و سیه میکشه مثل موجای بلند دریا رو این طرف و اون طرف میبره تاوز و با با دوچرخه با هزار زحمت و سختی از اونجا خواهر من همشهری پیدا نشده یعنی ردی نداریم ازشون که پیدا کرده باشیم. شما بسبور به بس بسپور به خدا. شاء الله که درست بشه. ازیز و رادیوفیلم خسته نباشید. شما فیلم تابوس های بیپر به کارگردانی جواد مزدوادی رو شنیدین این برنامه حاصل زحمت این عزیزانه جناب آقای علی حاجی نوروزی صدا بردار، جناب آقای فرشاد آزرنیا تهیه کننده و بنده فریبا طاهری که تنظیم و گویندگی این فیلم رو به عهده داشتم سربلند و پیروز باشین و خداییار و نگهدارتون